اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله الرحمن الرحیم علی الاسلام می یاری کتاب و لا ریفیه و رحم درباره ی کتاب اون چیزی که مربوط به تعبیر به ذالک بود عرض شد اما کلمه کتاب گرچه بر مصلق مکتوب اطلاق می شود ولی به حسب ظاهر در اصطلاح قرآن کریم کتاب اون مجموعی است که حاوی شریعت و احوام و قوانین جزائی و ماننده اون باشد صرف نوشته یا نوشتهی که در حد پند و اندرز باشد استراحا کتاب بر او در قرآن کریم اطلاق نمی شود کتاب اون نوشتهی که مجموعه قوانین باشه احقام و عوامر و نواهی را دربر داشته باشد و کتاب به این معنات که مجموعه قوانین باشد به پنج پیام برداده شد که در سوره شورا از اونها این اینکنی یاد میکنند آیه سیزده همه سوره شورا این است که شر اولکم بیند دینه ما وستا بهی نوهن ولزی اوهینا الیکه به ما وستاینا بهی ابراهیم و موسا و ایسا انعقیم الدینه ولا ستفرق و پی چبره على المشکینه ما تدعوهم الیک اللہو یچکدی الیه من یشا و یهدی من یونیم نوشته‌ای که مجموعه ای که شریعت را یعنی امر و نهی را در بر داشته باشد به نام کتاب است. بله اون کتاب صحیفه اعمال است. یک کتاب به معنای صحیفه اعمال است. یک کتاب به معنای مخزن کل حوادث هست که کتاب مبین هست یک کتاب هم به معنای مجموعه شریعت است. اون که در مسئله قیامت مطرح هست اما منعوتی کتاب ها به یمینی فهوه کذا و اما منعوتی کتاب ها به شمالی فهوه کذا اون کتاب اعمال است و اون ما فررت نافل کتاب های اون کتابی است که حوادث تکبینی در اونوشته می شود الان دست کتاب های تشریعی است که زالکن کتاب یکی از کتاب است که مجموعه قوانین الهی را دربر دارد و کتاب به این معنا که مجموعه قوانین الهی را در داشته باشد به پنج پیامبر داده شد همین انبیا از علیهم السلام و, و به دیگر انبیا اگر مسئله کتاب نسبت داده شد برای آن است که اینها همان کتاب نبی گذشته را به ارث بردن اون که به یحیای شهید سلام الله داده شد که یا یه یا کتاب به قوه این همون کتاب ایسای مسیح هست کتاب جدایی نیست در باره داود سران ملره به کتاب نشد است تعبیل به زبور شده است که ما انبیا را بعضی را بر بعضی فضیلت دادیم و آتینا داود زبور را اصطلاح کتاب را بر زبور داود اطلاع نکرده است گرچه زبور همه معنی کتاب است زبور یعنی کتاب ها کتاب جمعش کتب است زبور هم جمعش زبور اینها به معنی مصلق مکتوب هست اما اون مکتوبی که مجموعه شریعت و قوانین و عوامر و نواهی باشد اصطلاحاً کتاب نامیدی می شود اون مجموعی که فقط هند و اندرز و نصیحت باشد اون ممکن است روز زبور اصلاق بشود اما کتاب اطلاع نمی شود کتاب به این معنا را خدای سبحان به پنج پیامبر از انبیاء الهی علیهم السلام اعطا دیگران وارثان همین کتاب‌اند حافظان همین کتاب‌اند اگر فرمود ما به نبیین کتاب دادیم یعنی به این مجموع کتاب دادیم نه به این جمع اگر فرمود به رسول کتاب دادیم یعنی به این مجموع کتاب دادیم نه به جمع اگر در سوره حدیف مطلقاً ارسلنا رسولنا بالبینات به انزلنا معهمل کتاب و المیزان یعنی به هر رسول ما یک کتاب دادیم ما به مرسلین کتاب دادیم یا خود از انبیای اولوالعزم بودن کتاب مستقل می داشتند مانند ابراهیم سلام علیه یا اگر یکی از مرسلین بعد از هست ابراهیم علیه سلام بودن حافظ همون کتاب ابراهیم سلام علیه بودن مثل لوت پیانبرد که خود بذفی ابراهیم ایمان می آورد که فآمَنَ لَهُ لوط فآمَنَ لَهُ یعنی لِلابراهیم لوط لوط بر ابراهیم ایمان می آورد یا یحیی سلام الله علیه ایمان می آورد. کتابی که به یحیی داده شد جزء انجیل کتاب جدایی که شریعتی را در بر باشد نیست فتَحَصَّلَ کتاب گرچه بر مطلقاً نوشتهان میشود ولی کتاب به معنای مجموعه شریعت و قوانی که اوامر و نواهی را دربر داشته باشد جز به پنج پیامبر از انبیای الهی ایتانه شد و اگر درباره نبیین آمده است که انزل معهمول کتاب یا درباره مرسلین آمده است که لقد ارسلنا رسولنا بالوینات و انزلنا معهمول کتاب و المیزان یعنی ما به مجموع اینها کتاب دادیم نه به جمیع اینها و اگر جمیع اینها هم دارای کتاب باشند بعضی, بعضی به استقلال دارای کتاب و بعضی به تبعیّت این هم توضیح درباره کلمه‌ی کتابی که اینجا مطرح است و یعنی کتاب معنای صحیفه اعمال که مسئله قیامت است یا کتابی که مخزن حوادث است ما فرط نافل کتاب میشه وند دو قسم از اقسام کتاب بحث شد. همین آیه سوره شورا که شریعت را می‌فهمد ما این 5 نفر است که شرع الکوم من الدینه ما وصا به نوح و الذی اوحینا الیک دو تا و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی 5 تا. ذالک الکتاب لا ریب فی ریب درونی این نفی ریب در قرآن کریم هم در کتاب آسمانی آمده است هم در باری قیامت ظاهر لا ریبیشی که نفی حقیقت است یعنی شک درونی نه البته این محیمن است این محیمن است منظور قرآن کریم است چون قرآن کریم به محیمن علیه حقیقت قرآن شامل همه حقائق کتب آسمانی هست از اینجا هست وگرنه مراد قرآن کریم هست لا ری فیه این جنس نفشه است. یعنی شک در کتاب آسمانی نیست ری بالاتر از شک است اشد و شک است اون شک شدید رو میگم ری که از شک مستلح مقداری قوی تر است این تعبیر لا ری به فی یک وقت به همون نحوه حقیقتش اراده می شود یک وقت به اون نحوه ی حقیقت اراده نی شود به این معنی است که این کتاب شایسته شک نیست گرچه ادید در شک می نه اینکه در شک نمی کنند او شک پذیر نیست او مطلبی که قابل شک باشد نداره مطلب مبهمی در قرآن نیست که مشکوک باشد پس لا ری دو جور خواهد بود قسم اول آن است که اصلا به هیچ نه ری در او راه ندارد که نفس حقیقت است قسم دوم آن است که گرچه دیشک می‌کنند ولی شکشون بجاست این کتاب مطلب مشکوک ندارد اون که شک می‌کند نابیناست اون که شک می کند ناویناست مثل این که یک وقت ما می وقتی آفتاب تلو کرد روز روشن است جا برای شک نیست اگر کسی شک کرد چون در تاریکی به سر میبرد برد که روز است یا نه وگر نه روز که آفتاب تلو کرد جا برای شک نیست ولی کسی ممکن است اعما باشد کسی ممکن است در هجاب باشد و روز را نبیند ولی روز شایسته شک نیست اما شک بردار هست کسی که نمی بیند شک میکند که آیا روز است یا شب این دو تعبیر یکی درباره قیامت هست یکی درباره قران کریم درباره قیامت که فرمود ربانا انک جامع الناس لیومن لا ریبتی اون معنای اصلی حقیقت است اصلا در قیامت شک وجود ندارد هر کس در قیامت حضور پیدا کرد جزم پیدا میکند به قانیت قیامت حتی اونایم که کور به شروع میشوند میفهمند به قیامت هم اونایم که در هجابن این هم انرد بهم یوب این زل محجوبون اصل قیامت برای اینها مشهود است در چه لغای حق نصیب اونها نمیشود اما اصل قیامت برای اینها مشهود است قیامت جا برای رید نیست تمام نهان آشکار می شود از کرائر و احدی هم توان کتمان ندارد لا یکموند به حدیث جا برای رید نیست هیچ کسی در خصوص قیامت شک نمی کند یعنی در صحنه قیامت احدی شک نمی کند شک وجود ندارد رب بنا اینکه جامع ناسه لیومن لاری بفی در چند جای قرآن در باره قیامت سمود ری بر نمی دارد که لاری در اونجا نفی جنس هست سرش است که شک جایی وجود دارد که باطل وجود داشته باشد در کنار حق اگر حقی باشد و باطلی انسان در فرد شالک شک میکند که آیا من حق است یا من الباطل اگر جایی جز حق چیزی دیگر نبود شک وجود نداشت چین اینکه اگر جایی جز باطل چیزی دیگر نبود اونجا هم شک وجود نداره اونجا که با شک استعمال می شود پیر شکمری و امثال زالک پیداست که منظور از غیر از شک است این یعنی درجهش بالاتر از شکست اصل مطلق شک شکست مطلق شک چه ضعیفش چه شدیدش همش باطل هست این کتاب شایسته نیست کسی در شک کند برو شک ضعیف این چه فرمود لاره بفیه آیا جریان لاره فی بودن قرآن کریم مثل لاره بفیه بودن معادر یا نه در قیامت در باره قیامت فرمود اون روز جا برای ریب نیست که ربنا این نکه جامع ناسه لیومن لا ریب فی که این نفع حقیقت ریب است اصلا شک وجود ندارد در باره قرآن کریم که فرمود لا ریب نبه این معناست که عهدی شک نمی کند چون خیلی ها شک کردیم فرموت فهان فیره بهم یه ترد و این کتاب آسمانی به رام قرآن مطلب تازهی که در باری اصول دین باشد نیاورد انبیاء پیشین هم همین حرف ها را آوردن منطق قرآن کامل درش آورد ولی امت ها به انبیاء پیشین می گفتن که اینا پیشک می ماتد اونم ما شک داریم اون که تو ما را به اون به می کنی سریعا گفتن سخران تو برای ما مشکوک است چگونه می شود که در عین حال که عده زیادی شک کردم خدا بفرمود این کتاب لاره بفی هست پس اینکه فرمود لاره بفی هست یقینا نظیر لاره بفیه قیامت نیست چون در قیامت اصلا شکل وجود نداره در دنیای عده یقینا در درباره حقانیت قرآن کریم دارن چون سریحاً به انویهاشون گفتن سخنانه شما برای ما مشکوبه سرش چیست که یک جا لاره بفی را باید به نفع حقیقت تفسیر کرد که اصلاً وجود ندارد ری جای دیگر لاره بفی به این که شایسته نیست در باره او کسی شک بکند اگر شک کرد کار بدی کرد شکش باطل است نباید شک بکند ولی شک می کند چرا؟ سرش این است که در قیامت کبرا باطل اصلا وجود ندارد وقتی باطل وجود نداشت شک هم وجود نخواهد داشت بیان و زاله این است که اگر در یک موتنی جز حق چیزی دیگر وجود نداشت ما هرچه میشنیدیم و میدیدیم یقین پیدا میکردیم که او حق است. چرا؟ چون باطل وجود ندارد تا ما درباره باره فرد سالس شد کنیم که آیا از قسم حق است یا از قسم باطل. مثلا اگر در یک کتابخانه خانهی جز قرآن هیچ کتابی نباشد ما به هر کتاب از کتاب های این کتابخانه چه از نزدی، چه از دور اطلاع پیدا کنیم یقیی پیدا مهم که این قرآن است چون در این کتابخانه غیر از قرآن چیز دیگر است ولی اگر در یک کتابخانه هم قرآن بود و هم کتاب داستان هم قرآن بود و هم تاریخ هم قرآن بود و هم قصه یک کتاب را ما از دور دیدیم شک میکنیم که آیا قرآن است یا کتاب تاریخ است قرآن است یا قصه است کرا چون غیر از قرآن کتاب دیگر هم هست. و ما از دور که دیدیم نمیدانیم که است یا کتاب تاریخ است. اگر در یک سحنه جز یک سنخ کتاب نبود ما هرچند ببینیم یقین پیدا میکنیم که این هز همون سنخ است. چون مقابل ندارد تا فرد مشروب داشته باشد. شک فرقه بر وجود دو قسم است. یک قسم حق، یک قسم باطل، اون اونگاه هر سوام مشکوک است که این از حق است یا از باطل دارد. در قیامت اصلا باطل وجود ندارد. نه گناه در اونجا وجود دارد. نه دروغ گفتن در اونجا وجود دارد. نه نیرنگ و هیله در اونجا وجود دارد. نه معصیت را در اونجا راه هیچ خلافی در قیامت نیست. هر که هست حق است. زالکل یومل حق همه این نهان ها هم علم می شود داره عمل هم نیستی کسی کار بکند حالی یا کار بد یا کار خوب پس تمام نهانه ها ایان می شود اولا و کار جدید هم ممکنی ثانیم پس زالچل یومل حق اون روز می شود روز حق وقتی روز حق شد باطل در اون روز اصلا وجود نداره وقتی باطل وجود نداشت هر چه در اون روز بود حق است. هر چه در اون روز است حق است لزای انسان هر چه در اون روز میبیند حق میبیند این ربنا انک جامع اون ناس لیومن لار یعنی قیامت روزی است که شک در اون روز نیست اما اگر به این معنا باشد تو مردم را دعوت میکنید به قیامتی که میگوی قیامتی هست که یقینا خواهد آمد که لا ریبه فی بغویهی یقینا خواهد آمد این هم جزء محتبیات قرآن است که اون البته ریب بردار هست قرآن میفرماد قیامت هست ادیه هم شک میکنن اما در دنیا که هستن شک میکنن که قیامت هست یا نه ولی اونجا که رفتن جا برای شک میست و اما در باره قرآن کریم خدا فرمود این کتاب ریب نداره یعنی شایسته نیست اهلی در رو شک کند اما خب خیلی شک کده پس لاری به فیه نه به این که اهلی شک نمی کند بلکه به این معناست شایسته نیست اهلی در شک کند چرا در باره قرآن شک می شود؟ چرا در دنیا ادی در حقانیت قرآن شک می کند؟ برای آنست که دنیا دار حق من هست نیست داریست که حقش در کنار باطل است. اگر انبیه آمدن متنبیه هم آمدن اگر نبوتی بود تنبی هم بود اگر حق بود سهر و شعبده هم بود اگر حق هست در کنارش باطل هم هست چون اگر حق در کنارش باطل هم هست وقتی یک کتابی به مردم عرضه بشود بعضی ها میفهمند، بعضی ها برشون روشن نمی شود که آیا این جزعی حق است یا جزعی باطل پس شک در دنیا راه دارد و در قیامت راه ندارد سرش این است که در دنیا هم حق وجود دارد هم باطل نزاق حرد مشکوک هست در قیامت جز حق چیزی دیگر نیست چون باطل وجود ندارد حرد مشکوک نخواهد بود اما چرا در باری قرآن شک بیکنم؟ و چرا قرآن شک بردار نیست اگر کسی کلام شناس باشد اون بدهیات اولیه را فراموش نکنند لجاج و اناب دوشته باشد در خدمت قرآن کریم بیاید شک بردار نیست کتاب نیست که در شک باشد و اگر کسی با تعصبهای قومی و با لجاج بخواهد برخورد کند البته مردد میموند اینجا فرمود لاری به فیهه پس به این معنا خواهد بود که این کتاب شایسته نیست کسی در باره او شک کند البته ایدیز یادی هم شک کردن در همین سوره بقره خدای صبحان بیل هم تابعا این کندون فیره به نمان نزد نعلا عبدالعا فعتو به صورت من نمی شک کردن به خدای صبحان این شکاک ها را به تحدی دعوت کرد و ماننده اون بله اگر ما بگوییم هر کس قرآن را درک بکند شک نمی کند این ذرات به شکل محمول است یعنی اگر شک نداش شک نداشت این بازگشش به اون است اگر کسی قرآن را درک کرد یعنی اگر قرآن را فهمید اگر به قرآن معتقد شد شک نمی کند این ذرات به شکل محمول است یعنی اگر کسی در قران شک نداشت شک نمی کند این یه مقدار توجیه دوری خواهد خوب این کتاب لا به فيه یعنی شایسته نیست اهلی در این کتاب شک بله چون قرآن چون قرآن کریم اعجازش بدهیست نور هست جا برای شکل نیست می فرماد می فرماد به این اگر شکل دارید خب مثل این بیارید دیگه اگر کسی شک دارد یک امی این کتاب را بود همه علمای شرق و غرب و جن و از جن بشه بود. یک سوره مثل این بیاره اگر کسی اهل اناد نباشد شک نمی این که فرمود لا ریبه در چی تردید نیست؟ در این کتاب ریب نیست در چی او ریبی نیست؟ قرآن کریم دو بود دارد یکی دعوه یکی دعوت یکی دعوا دارد ادعا دارد است که من کلام الله هم یکی هم دعوت می کند علی توحید و نبوبت و العدل و معاد و سایر الاحکام و حکم این خلاصه عرف قرآن کریم است ادعای قرآن این است این کلام الله است دعوت او هم به توحید و نبوبت و معاد و سائر از صورات علاوه است فرمود نه در دعوه و ادعای او نه در دعوت و هدایت او او اگر مدعیس کلام الله هست این دعوی او صدق است لاره بفید و اگر این سنها را به توحید و نبوت و معاد به دیگر احکام و حکم دعوت می کند این دعوتش هم حق است لاره بفید هم در اون ادعا صادق است دروغ نمیگوید گوید درونی هم در این دعوت به حق دعوت می کند ریب در دعوت اونی زهاله کلی کتابو لا ریب فی دعوه ولا لا ریب فی دعوته. اما از اونجاست که میگوید کلام الله است فرمون به این عهد و میرمشهین از تجارکه فعجی روحت تا یسمعه کلام الله این کلام الله هست این کتاب الله هست این نزل به روح الامین هست که سراسر قرآن از این ادعاها فرابانست که قرآن است کلام الله هست این ادعا گای به صورت کلام گای به صورت کتاب گای به صورت وحی گای به صورت تنزل گای به صورت تلقی به امثال ذالک تعبیر می سنند. برای حقانیت این دعوا تحدی کرده است می فهمد به این این جای ریب نیست که کلام کلام الله است. میگویید گویید کلام الله نیست من ساختم من که درست نخونده شما همه درس خونده هم بشید مثل این بسازید این اصلا قابل ساختن نیست می ما کان حدیثا یفترا اصلا قرآن یه سخنی نیست که انسان بتواند بدلی او رو بسازد پس در دعوای خود که مکرره در مکرره خود را به خدا نسبت می دهد مجدد من کلام اویم کتاب اویم وحی اویم در این دعوا صادق است لا ریب فی هم که ریب دارن در این دعوه ریب دارن که این کنتون فی ریب مما نزد الله على عبدنا به صورت علمه مثل اگر ریب دارید مثل بیارید اون ریب در دعوای قرآن است در دعوت قران هم ریب نیست برای اینکه او به حق دعوت میکند و اللهو یقول الحق به هوا یهد السبیل به حق دعوت میکند می گوید اگر شما در حقانیت دعوت من تردید دارید. ها تو برهان کن. شما دلیلتون بیایید. اینجا جای معجزه نیست. اینجا جای برهان عقلی است. فرمود من شما را به توحید دعوت می کنم. و می گویم هر گونه شرکی باطل است. حاضر ذکر من مهی و ذکر من قبلی دلیل من حق این کتاب است. و براهی این کتاب. شما در باره شرک دلیلی دارید. ها تو برهان ک پس شکی که مربوط به دعوی قرآن است با تحدی و معجزه برطرف می شود که پرمود این کنتون فیرهی به ممان نظرنا حالا حبزنا فتر شکی که در دعوت قرآن هست اون با مطالبه برهان حل می شود اگر شما در باره توحید معتقدید سخن من درست نیست به شرکتون درست است هاتو برهانا ها کن نمی تونید بیاری چه کاری از اینا ساخته است حالا کاملا قران کریم با مشکین استدلال میکند میفرماید یا دلیل عقلی بیاری یا دلیل نقلی یا برهان عقلی اقامه کنید که شرک حق است یا برهان نقلی که به یکی از کتب سماوی گذشته استناد داشته باشد که حجت باشد و الا در کتاب های دیگران حرفی نوشته است در مسائل اعتقادی حجت نیست فرمود یا کتابی از کتابهای سماوی سخنه شما را تعیید کند یا برهان عقلی خواهی کنید فتحصله که قرآن دعوایی دارد و دعوتی نه در دعوای او ریب چون کلام الله هست بلجه است نه در دعوت او ریب چون به حق دعوت می کند و اونهایم که ریب دارند اگر در باره دعوای قرآن ریب دارند قرآن اونها را به مبارزه دعوت میکند به عنوان تهدی میگوید اگر شک برید مثل بیاری و اگر در دعوت او راید به استدلال فکری و برهان دعوت میکند میگوید هاتو برهان نکنم کنتون ثابتین الحمدلله